بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب الله على سیدنا رسول الله و آل طیبین المعصومین و اللهم شد که در آخر خبر یه دو اشکار مرحوم و استار نرسند اون در زیل نبر ما در وقتش نارو نخوندیم که اینجا دیگه بحث تمام بشه انشاءالله البته در بحث و جهت خبر در کتب اهل سنت با اختلاف با اختلافشون زیاده مباحث خیلی فرامان دیگه هم مطرح شده یکی مزید جرب و تعدیل الفاظ جرب و انفاظ رو و صحبت های زیادی آمده چون دیگه به اصطلاح ما نظر اون حدث اون در اینجا اون بحث کبروی اصولی بود وارد اون بحث ها نمیشه. بحث انصداد و دلیل عقلی رو هم اجمالا جواب دادیم از کنیم چون بحث مفیدی نیست و حصولا نکته نظر و دلیل اهلی اون رو هم به اصطلاح متعرض نشدیم بحثیم همین دوستا اشکال رو که فارق جهت خبر محظراً شده از ذریه استاد را که ایشان حالا نششه در ذیل آیه 90 ذکر کردند. اول رو و ایشوال اول رو با جواب مرحوم استاد از ارسلن و گفتیم که توضیحی بعد در نتیجه در نهایت بحث. ایشوال دوم به اصطلاح مخالفه به ایشوال اول این هر دو ایشوال در اخبار منواس اون اشبال اول مال سد... سلسلی سند بود این به اصطلاح مال آخر سلسلی سند و اون اشبال در اون خلاصش اینه که تعبد به حکیت خبر مستمتفه است و یک اثر شرعی و اثر شرعی بر اون خبر اخیر با میشه برای اخبار اثر شرعی نداره پس این حالا این باقنسان برگردیم به خودمی سلسل اصحاب ما مثلا پر اصلا این در کتاب شنایشه که من از اینه که با زمان ساده چه مثلا نماز در یه بسمان آز این خب اینجا این سوال اینه که بدله خودجیت تحبودی خبر در جایی وارد میشه که داده اثر شرقی باشه این که زراره میگه هم ساده این طب فرمده اثر شرعی باست اما این که حریز میگه گفتنی که از سر شرکی داره اون خودش از داره. یعنی اونی که الان در موقع شما هست کلام حریف همون زراره هست ده قصد این چه دقیق و فرموز داریم برش این نهایتش این هست که حریف به شما بگه زراره چه این گفت این نهایتش این نگه زراره چه گفت. گفتن زراره که اثر سر نداره اونی که اثر سر شرعی داره این به امام صادق این تا پس عدلی تعبود به حجیت خبر فقط شامل حال رای که مستقیم از امام از منصوله رو میکنه میشه شاملش فرد بردی نمیشه چه رس به کلیمی کلیمی که بگه هدستانی علی ابن ابراهیم ما فقط تعبودمون به اینه که میدونیم علی ابن ابراهیم مظهبه نمیده بیش از این دیگه دیگه دیگه علیه ابن راییم هم از پدرش پدرش هم از حماد فرسوی این که حماد هم انحریت این همیش شده میشه اثر سر شهرین, و اثر شهرین و از سر شهرین فرسو کلام زراده هم سادر علیه سادر مترفف میشه ولذا برپرزی هم که عدله حجیت بیاد شامل فقط خصوص کلام زراد میشه کنم ثابت نیست چون بلیه سر سر سندر پسر نداره در بحث گذاشتم نشریه کردم صابر هم در اون سال حساب هم دید بعد از اتوبوس سری این شهر چه وضعی والله این چند تا مصدر هم تاثیر تو اهل سنت این اشارات فعلا پیدا نکرده شرط واسه ابن در سرائده یک مناسب در باب شهادت یه خبر واحد از دلیل و از اون میگیره که به واسطه باشه این می دیشون عبارت او خیلی استدلالی نبود فعلا عبارتش نهر درمونه و هر حال ظاهر اشخال اینه این اشخال من اجمالا بخونم به خاطر عبارتیشون الوجه و ان انت تعبده به حجید خبر یا توقف علاقه به به نفسی و حکمن شرعی یعنی او ظاهر شرعی محقق نظرن حجیل یا تعبده به حابل حاضی فرنه تعفوز به حجیت الخبر بدون اصد لغوان محضون و علیه فدعی به حجی لایشون مثل اخبار شیخ ان خبر نوفی بلکه اصلا این باده در کتاب حریض هست که قال زراره قال اصلا دارد اصلا این حده به حجیت قال حریض رو شامل نمیشه چون فوقشی میگه این قال زراره فوقشی میگه و گفتنه زراره حجیتی نداره آسان نداره بله. بعد. برایشون بعد به بهادر اشکال جاری در جمعیه اخبار جمعیه سنت رواض اذلر اخی و لذیم قرار میزود. این اصل اشکال. بعد مرحوم اوسط و تا به ابراره هیم این در وسایل رس و بعد مرهم کتابای بعدی مرهم این و دیگران. ولی که از کلی استاد هم همه خودشون در نظر گرفته و هم به دروداری مصادق را چه موجود کرد. ایشون میفرمائند نه ولها در اشقال ساقتون بنا اساسی علالمختار من ان ماجئوله فی باب تروب و الامارات و الکاشبیه و تریبیه به تظیم کتش ایشون ترجمه بده کردن کینه اشقال یعنی اون که گفت تعود خود درشتون تعود به لواز اثر شرعی ایشون میگه روی مبنای ما این نیست تعود تعود در باب حجره ولی این نیست داره اثر شد نوتویت هم میشه وازه کشته روی کشفه از قدیم ممنون تصمیم در, در, در ممنون هایدی و ها برد زیادی آمده که ممنون همین ممنون رو برد. خب اگر بحث بس, بس تصمیم کشته فرق اثر اثر شدیه باشه نباشه یعنی ما وقتی زراره میگه مثلا حدیث میگه قال زراره یعنی که ما این کلام رو از زراره شدیم. اینه محنه حجیت و تنبود به خبر باریم ولذا از کردیم که من و خبر سقره که حجر دید فرقی بین موضوعات احکام حکام در همه این موارد. هم حجیت و تنبود عبارت از این است تفریم وقتی حریزیم که قادر سراره کنا ما از درار شیم ظاهیم قادر ساده کنام از درار این بحثتر این و به این مبنای ما ایشون به تغییر ایشون. دیگه این اشکال پیش نمیاد منضوعات خارجی غیر موضوع همه یک راست بعدش میگن ناملو قل نام به این المجهولی با و هود تنزیل مؤدّد منزلت الوهی اگر قائل به مکتب تغییری کنند تنزیل مؤدّد منزلت الوهی بشه یا به همه که ما کل رانی داشتیم جد بدام قائل بشیم. یا این شام حکم صادری بر طبق خبر قاید بشین یا این حکم واقعی بر طبق خبر قاید بشین بحثا این رسمت هست تنظیر لکبیرشون تنظیر معده منظرت الواقع یه توجه خودش کار این مشکال درستی و انت تنزیل مذکور متوقف کن همه علیه کنن معده حکم شرعی هست عوض و شرعی و اما علا المسلک المختار من انه المجعول هو ترهی و کاشفیه فلا حاجت اداره خاضر من بعد بعد ایشون یه توضیح میدن چون بیگه توضیحش خیلی نقصی خاص نده خدا عارم. بعد ایشون میگه و اما علا المسلک المعروف من انه المجعول في باب ترب و الامارات هو تنزیل المعدا منظرت الواقع فی امکنون جواب عنه اشکال مذبور به وجود روی مبنای ایشان که اصلا اشکال مذرح نیست روی مبنای مشکور هم میشه جواب بست ایشون میگه که جوابش یکی این که القضیه تو طبیعیتون این که مثلا صدق یا خبر العادلی و از قبیل قضیه طبیعی مرادیشون از طبیعی در اینجا، یعنی به لحاظ طبیعت لعصر نه مراد طبیعی مثل انسان نوم چونگاه قضیه طبیعی مرادشون نیه, نیه نه. ولی ایسا مراد باید طبیعی المعقول به معناه به شرط لا که قلومه انسان نوم اون حتی لا یسر حکمه نه طبیعه لد بلی مراد باید طبیعی به ایشون طبیعی طبیعه اصولی به معناه طبیعت به شرط الوجود سری حبیث شرط وجود سریعه نداره خود ماهیت نظر به خود طبیعت نظرش به خود طبیعت خبر کار نداره به خصوصیات مثلا نظر به خود طبیعت آب ازا این به ازا قضیه تغییر تغییر اصولی یعنی همون مضلق در مقابل عام توضیحاتش گذشت توی عام نظر و افراده در مضلق نظر و طبیعت فیصل الحکم هلن افراد پس نظر او طبیعته بود طبیعت رو خود بده تلا مانه من شمول دیل الحجیه لخبر شیخ عن المفید معکون الاسر شرعی للمخورده و خبر المفید هول حسن الحجیه و حجوب تصدیح و که داره یعنی پس که خبر زراره که اثر داره بخاطر خبر زراره از امام این خبر هریض هم بر ما اثر پیدا میکنه الاوحتی شخو مفی این خبره چون اونجا عنوان طبیعی خبره ما وقتی داشتیم که ذراره از امام صادق که اثر داره بعد از اینکه این هجت شد همین خبر زراره که مرهوم هریض زم اثر پیدا میکنه و چون ناظر نیست به افراد اشکال نداره رو طبیعی خبر اون اثر پیدا کنم بعدی هم, هم میتونم. خب این مطلبی هستن که در اجواری بعد توضیحش ارزش داره. از سوره دعوا الغنزه به ما هو المنافي سال الاثار فيها بده مثلا. یعنی حالا فرض عدل لفظی شامل نشه. عدل لفظی مراد نیست صدقه عادی که من تو مفهوم عادی لکن ملات شامل میشه. صدقه به لحاظه این که منحساب مجموع اثری بار باشی. اینجا من مجموع خبرز حریز رو اثری میشه باشی. که حریز میگه قادر زراره خودش اثری داره. چون زراره تاریخ نحومن بودن زراره به کلاه موسادرن هم. حالا ممکنه لفظه شاملش نشه. اما مناتر و ملاکر شاملش میشه. ای وجوب تصدیق و بعد تحققی که بها در کتاب من لمیشمون ها در لعجل محضور المسکو که ا سالت یا به عدم رو قول به فرس بین حاضر از و بین ساله آسان چون از ها ورن تا علمان اهل سنت به تفصیل نیستن که بگه این کلام زروع قالت صادق قبول بشه کلام حدیث که قال زروع قبول بشه فرمان کنم قالب تفصیل نیستن در حجر خبره اینکه که بلاواسته باشی یا بلاواسته در باشه ظاهرا اینشون نهیدن ولی خب ارز کردن شیخه ابن الگلی در سراعتن اگر باشه بوجهت نیست تفصیل قاعده ار رابع و هو احسان الوجود لم يدل دلیلون من آیتن او روایتن حلا زا... رزو زا... میکن المعد اماره حکم شریع او دلیل بر عصر منظر به این نمانه و نعتبر من جهت حکم العق و انت تعبود و امر لای کنو له احسان شری لحوان فقط بحث بحث لحویته یعنی ما صادقاً ارز کردیم یکی از فرح های اساسی احساسی شبیه این بحث اینجا بریشون میخوانم یکی از فرح اساسی احساسی اینجایی که قدرت شرعی باشه یا قدرت عقلی باشه که اینکه قدرت هم در استدارشون متعارفه که اگر قدرت شرعی بود شک در بادرت کردیم برای عقلی اگر قدرت عقلی بود، شک که در قدرت کردیم، احتیاط کرده میشه. این توبا همگه فهمه. منادر قدرت شریعی اینجایست که قدرت در لسان درین ارس میشه. چون عقل حکم میکنه کسی که آجزه که تکلیف نداره اون که حکم عقلی. پس اضافه بر حکم عقل، اگر در دلد لسان دریان مثلا یا یا مقاله که حج داره مشروع. منستاتا الهی سبیان. خب این به حکم عقلی که هر تکلی داکن اگر قدرت در لسان دلیل شهر شد، بیشتر از و در لسان دلیل شد، باید احراز او بوده بشه خوب دکتر نوته کنه. اما او چیه؟ شد در یک جا برایش، شد در یک جای اگر قدرت در دلی لسان دلیل دل اخس شد، اونجا باید احراز بشه اما اگر در لسان در این او دکتر فهم احراض نداره قدرت عجل مانع نمیخواد شما احراض بکوني قدرت میگه وضوع بگي خوب قدرت داشین میدي شک دارین که قدرت دار ن مثلا مکن آب آبو خش باش خو بین نگاه بکن لذا بن ی شک در قدرت عقلی باد احتیاط بکن چون در رسان دلیل ن وضوع بگی. اگر متمکن هستی غیر اگر ن یو نه گو وضوع بگیر اینجا عقل حکم میکنه شما باید اججاب بدي رو شکر هر کی پیگیری بکنه ببین توانایی داریم داره ادا جمعی در قدره را در حقیقت نقطه فنی عجز مانه چیزی شرط نمی کنه اما علی قدرت در دل انسان دلیل باز احساس بشه ایشون در اینجا شبیه اون میخواد بفهما ما در واقع تعبد دلیل نداریم که ختم باشه یا اثر شری به طور نشه نه ما دلیلی که درم لغو نباشه خب اگه بخص همینی که مردم کلی نیم که حدستانی علی ابنگرانی خب این کلام کلی نیسین اثری که ندار حدستانی علی نمی کلام علی ابنگرانی حدستانی کلام حلیظ است زراره نمی کلام و این یکی آخری اثرناییست چون دلیل ما نکته ما این است که تعبد باید لغو نباشه در این جور جمه ها اغلا تعبود لحب نمیدونه. یعنی شما تعبود به کلام کولیژی پیدا کنید بعد تعبود به کلام علی ابن بر بعد تعبود به کلام ایور ناشه بعد تعبود به کلام حریز بعد تعبود به کلام زراره در این تعبود اخیر حکم میاد همین مرزای در اخیلی آمد از ضعبیت خارجی نقطه فندی دقت کردید یعنی این که باید تعبود به لحاظ حکم شدی یا زا اثر شد این از قدرت عقلیه نه از قدرت شرعی این در لسان دلیم نیامده تو روایت نیامده لابود در یکونه تعبود به لحاظ حکم شد این بنای عقل سیره عقل که تعبود باز شرعی باشه نکتهش همینه اگر این مقدار باشه شامل کل سند میشه ولی اثر شرعی در آخر سنده چون مجموعیستن دلاخل اثر داره، اون مجموع لحاظ اثر گره کن یعنی در اینجا ما در روایه به تحبیلیشون این فیانستان اینکه نمیادون دلیل من و دلیل من آیرتون و روایه علا لزوم کنه معدل اما را خوب شرقی حالا به جای این لمیادون دلیل و من آیر و روایه به این مطلب که تربط با حکم شرقی به حکم شرقی یا زا اثر شرقی این در لسان دلیل نیامده در دلیل لحظی نیامده خوب در قسم میکنی؟ این مراد ایشان اینه ما یک دلیل لفظی نذار، اگه دلیل لفظی داشتین بره مشکل میشه. اینجا خوب که اوغلایی است. که اوغلایی در این جور چیزها بیشتر به لحاظ عدم شه نه به لحاظ وجود. خوب که اولا اوغلا میگن لغوزه شارع بیاد ما تعبد بکنه، مثلا شاذ بیاد تعبد بکنه که این ذرت روشن، خوب در دایره شارع نیست اصلا. ذرت روشن یا قومه، چه اثر داره شارع؟ چون میگن به لحاظ رفعه لغویت یعنی اثر کش اگر نکتش لغو بودنه الان در این سندی که عرض کردیم لغوی نیست برای به لحاظ قیلت زرار لغوه اما چون منطقی میشه به زرار به اماموسا از لغویت خوادش میشه به این نمانه تا و که من جهت حکم اقوی و عمال و امر لایقون لغو اثر و شریع لغو لایقون ولکن یکی فی دفع محضور لغویه وقوع الخبر فی سلسله اصبات الحکم شعری اصال رونال امام چون وقتی مطلب مطلب لغزی نشد عقلی شد در مطلب عقلی تا لغوییت ما داریم چون نیست نیستی در این باشه و به اواناتون اخواه یکی فی حجیت اخبار روار توتب اثر شعر و مجموعه من حیث مجموع لا منظمه اعتبار کرد تو به اثر علا کل خبر خیلو در از نه هم باکان این جمله روات واقع پی سرت قبل قول محصول فاصله، غیر و موصوبنده او رجل و ها البته ایشان به احترام نیتون زیگاهی نبر بود توش فاسق آمده بودشون فاسقه و فاسق شرط نیم دارن آمده به یش لا یشمال دیل حجیل اخبار بقیه روات هل راقع که سلسده و لکانه عدود هم او صغات هم صغات جمع مهنده شرعی این چهار جواب مرموم استاد از این اشکال دوم پس دادا این اشکال دوم جواب خلاصهش این شد اولا این مفتنی که با در مصدر خدم شرعی به لحاظتون شبیه یا اصل شبیه رو شد این ثابت نیست، چون رو جد خوابی شما هم از بابت هتی میکشم ساید یه اگر مسطح مشکول به تحریدیشون تحرید مسطح مشکول احسانه ما قبول بکنیم چهار تا شوابیشون در این جهت دادن به همین تحریدی که هست آیا این دو تا سوال و جواب و خصوصیات ها درست یا نه یعنی اصلا این ترکبه هست؟ اصلا خدمتون البته اصلا در این جا و دو هم نقطه شده اما این خوب بود که در کل مطلبی شده ببینید دقیق بکنید اصلا من سابقا دیده بودم عبارت خود اونا رو خونده بودم تازگی پیدر میکرد ما این معتضر هم باید باشه شامون معتضر هم برای اصل مطلب روشن بشه که اصل مطلب چیه؟ ببینید در بحث حجیب خبرباه کرارن ارز کردیم هم به لحاظ اصل مدنا و کورا بین آیان اختلاف، هم به لحاظ تصویر حقیقت و حجیب و تعبط بین آیان اختلاف، هم به لحاظ گرید و حجیت بین آیان اختلاف. بعدی از وقتا اشکاری که بالا میشه روی معنای خاص این اشتباه نشه اصلا بعدی از وقتا ایگه اشکار معنای مبانی خاصی بالا میشه اولا چونی گردون روز رو خیلیم جمع بکنیم اولا اصل تصویر و جیه. این خودش محل کلامه که در باب خبرباهه اصل تصویر و چیه و لظام از فردیم از متکلمیم همسابه ابن روه گفتن اگر مثلا خبر رو طریق صرف دوید و منشه تاثیر در مسابه و مقاصد ندونی و مسابه و مفاصل واقعی هم ممتوک باشه و در صورت عدم حسابه خبر خبر خبر مسابه فوز میشه مثلا یا مسابهی موزمه باید میشه این طب برسا نیست و این روما مقاصد شرقه این کسیم حقا بایشانه راست این مغنیمات قبول رو کنید قبول معبولی خب باید یک کاری شو کنید خبر رو طریق صرف بدونیم چون از سری مثل خبر طریق صرف این غیر از قول قاضیه قول قاضی طریق صرف نیست از آرکی جامعه بر اساس رفع اختلافه میخواد شما از قول قاضی یقین پیدا رو کنید رسوح پیدا بکنید یا رسوح هم پیدا مکنید نه یقین بخلاف طرفین از یعین به خلاف حکم قاضی حجت کاری بین هر دو انداره که شما یعین دارید و وصول دارید کاری ها چون اگر بازی نباشه اختلاف در جامعه میمونه اگر من بگم حکم قاضی وقتی حجیت داره که شما وصول پیدا کنید باذر اعتراضونه چون قاضی رو میگویند یک طرف میگه وصول پیدا کردم دو ماده رو دیگه باز اون قاضی دیگه حکم می کنه این دفعه اون یکی می من وصول پیدا کردم باز با کمی اختلاف نمی موند لذا اسمی رو موضوعیت یعنی شما این تصویر رو اول بکنید که حجیت خواهم که طریق سرکه هیچی نداره مثل یک کلیس بون مثلا ما با گفتار و در مکه خدمت موساده نشید مدینه خدمت موساده مراد اینه هیچی احلاس مود به پس یک بخش اولاً راجب به حقیقت فرم بود. و ارز از اهل سنت ما درجات متفاوت و ارزشون ارز عرض اینقدر این قرد که اصلا معتقدم تبرسه به انصفه بکنوندار واقعی و این اول کلام از و استاد خوندیم که مطلب باطل باطل فیلوزه ایسان اما قائل داریم اما باطل قائل داره. عبارت ابن در علاقه مثلا بیگه ای اینان هم نظر نظکر فقط قرآن نیست مارواه و سرطان انسرطان رسوله یا مثلاق اینان هم نظر تصویب می کنه کسا مثلاق اینان هم خب نیستیم مبنو قبول داریم اما قائل ندارم نه قائل دارم مخدوست پس اولا اصلا تعبد خبر چیه ولی زا اده از مبادی رو ما ذکر کردن و اصلی اصلی مدار در اشتهاد بوده در خبر نبوده اما در خبر به دیشون جریاد اصل در اصلا توضیح داشته و صابره هم حال که حالا تکرار حال تکارانو حال خودم رو کهی مساعده بود خلاصی بحث این است که تارتن قائل میشیم حالا مسئله که علاقا در میانه غلمانی متأخر ما به احترام نامی ناغازی و آقای خویی بیشتر شده مسئله هجیت اصلا در واقع ادعاست از تکیه بر کاشف اون تاشنا بسامیشه این بر ولی علاوه بر اون درنی و رو ذاتی میدونن زنون رو به جعلی و اعتبار معرکه میشن کشف کاشف در واقع می شعر بی خوجियत نداره نمیگه نمیشه شاره ایجاد باشه بیان چیزی کاشف نیست کسی که یا جهله یا زنه تساوی بینه ایجاد کاشبیات نمیشه رو. با. پس در مس بعد دست شارع نیز کاشبیات هست. در مس زن دست شارع کاشبیات ناقص تجزیه شده. در مس شرک دست شارع نیز هیچ کاشبیات لازم نیست. ایجاد کاشبیات نمیشه نمون. تجزیه می کنه ایجاد که نمیشه. و نُقصی فنی رو ما کاملا توضیح دادیم. نُقصی فنی اینه که این هزارا حجیت رو مشابه با کاشفیت میدونه یعنی سر حجیت دارمدار کشف کشف تامنه حجت تام؟ کشف ناقص حجت داره. کشف نیشی نیست اصلا نقطه فرمی که امس مرمو آزیا و مرموانی نایی شک توضیح دادن آقای خیلی تو توضیح اینجور ندارد پس یک نکته اینه معیار حجیت که منطقه یک تنجز احکام باشه چون اصلا این حجیت اون معطله است که مکلق با حکم رابطه پیدا می کنه. حجیت اینه. اصلا حجیت اون معطله است که حکم مکلق می رسه. مکلق با حکم رابطه پیدا می کنه. این رابطه پیدا کردن اوند وقتی منشه میشه که اون حکم موضوع آثار جزایی می شه. این دو تا حجیت میخواد. یکی به لحاظ موضوعی که به لحاظ کبرا یکی به لحاظ اسلام یکی اینکه خرم نجس هست این رابطه با این حکم یکی این این خارجی خرم با این هم باید رابطه بیدون اللحب بگیم میانتون ولی بله، اگر فهمی خرم نجس هست و ماهی خارجی خرم تنجز میاد با جیهت میاد ای که این مرحله بعدی اترات تا برای انجام داد واجبات داد سعال داره وقت اون رو جیدی که در اصول ما رو کبراست اصلا صغرا رو اصولی طبیعتا وحس کنه. اصول کنه بنای قوانین بشری تو رو کلی توی این وارد نمی شه. قانون خانون طبیعتا تو صغرا نمی چون محنویت نداره هزاران میلیون انسان هستن. هر انسانی مختلف در نوع ما همی لباسی که شارع به بدی این لباس خاصی اون لباس خاصی نیست نجسه اون, اون پاک اصلا متعارف نیست که و کار قانون گذار این باشه ممکن است یک شهری بزنه پنجا ده یا بدی پنجا ده هزینه یکه اون پیرمرد یا رئیس عشیره وافده بگه در, در مجامعات کوچیک امکان داره بعض از اهدا هم, هم در دین خودش متعارف سهرت اول مرکزیات باشه ممکن است امکان داره نه میگه مستحیل نیست. جز مستقیل نیست. اما متعارف و این نیست. چقدر می کنید؟ متعارف و این نیست که قانونگذار وارد جزییات باشه. شن قانونگذار مثال جزییات. اما در کلیات چرا؟ اختلافی که در اینجا پیدا شده سر اینه. مثل منو آقای خویی، مثل منو ناریمی، را هم مثل صغریات و جزیات دارم یه میگه که چطور شما اگر به جزی یاد پرد کردن که این مثلا مایه بوقه از هر راهی بود کبرایات هم همینطوره اون نقطه ایفردنی اینجاست شما از هر راهی قرفت که این خرم نجسه کافی در معابل اینها در اینها به این لغت نه لازم این لغت کسانی بودن مثل اخباری ها. هم بودن ناشای قرفت داده کنیم اون قابل کننه باشه مثلا شما از دیاز قرفت د باز هم هجیت نمیشت بگه پس در حقیقت در بحث روچند شد نا یک هجیت دار مدار کشف یک این کاشف کاشف طریقیس در واقع موضوعات بناشونی که مطمئن در واقع احکام مختل مرموشی قنصاری قنصاری برای ما این در کبرایات همون از هر باری قرفت داشت. در مقابل این ها مثل اخباری ها مثل شقیل و توسار که در کلواز مرگومه از تجوهی برگانی و در اخباری یعنی اخباری اصولی که قبل از شیفن مثل مفادی دیگران از مکتب زمان وحیل برگانی این طور شد که در کبرایات هم همی مثل همین اخباری مثل نه. ق میکنه شاره و ممن شما که شماقطتده از این راه بود جده حال قث باشه. مثلا شما قرض دا این مو کمملی از تصویر کرد این قدر کافی نیست این روبال و زور سایت میه سری به اگر بود قبوله این که تو فقط قف پیدا رو نمیشه حتما باید تو سایت اززی داشتهید. و ما صن اینتم هر با اخواریات و از آرا همس اسوانیا مدنناشون همه خلاص این مرد نوی مرغوشانسیم ما هم هر آب به نظر ما که هر با اخباری است قابل من امروز نداره مشوق خاصی نداره این یه اعزاز بیاد شما بعد تو بکنیم و بی خود فردا کنیم من میشه میگه شادی اگر تصورتون بوده میگه قسمت دوستی صوت قصد کنیم تشکیل در قسمت میکنه که ورشما قسمتی زده شد مرا مشهد زندات میشوند ما اصلا نمیخواد تشکیل تو قسمت کن پس این از یود است. اونا میگن از قط نمیشه نه کرد با میگه روشتار نداره نه از قط مشکل نداره ولی زده شما اگر بحث رو خود پیدا کردی از آه استخاره از آه خواب از آه بگون معروف بیاس اونا میگه اشتار نداره با میگه نخیل وقتی شاره تو معید روزونی جعل میکنه رو جعل میکن کرده بله بایدان میگن شاره ای رو گفته کتاب و سنت خود برای شما اون در کتاب و سنت. به شرط این که با بیان معصوم باشه اگه تا بیان معصوم نباشه حالا این شرط دو شرطی ما اگر فرصان روایت در مقام نداشتیم مثل آیه لامرن همان وی غیرون خرقالله روایت داشتیم اونده رو هم جو هر دیگه مثلا آیه سرش روایتی در توضیح اون نداریم همین دمن محصوح همون مثل دمن محصوح خب در محصوح یعنی چیم همون خونی که در وقتی که حیوان سر بریده میشه میاد بیرون خب ممکنه بعد از نیم ساعت دیگه این قصاده حیوان شکاف بخوره با خون بیاد بیرون اینا نم نه مسخوه هم است. ما در روایات گاهی نداریم تفسیری آیه ای رو نداریم. خود ما هم میتونیم بفهمیم مشکل خاصی هست. فرع یه مقدار با کلام اخباری ها ما موافرا نکردیم و الا اثرین حق با اوناست حتی اینجا روشن شد که یک محکومه هجیت در تصویر معنی ناینی تطریم کشفه سفرش هم روشنگ شد و خود دقت بکن اینا میگن حجیت در امر تطریهی سفر معبوله تصویرش هم تطریم کشف سفرش هم این است که هجیت دارمدار کشفه کشف تام هجیت تام کشف ناقص قابل جنر جایی که اصلا کشف کس قابل جنرم نیست این سفرست حالا دیگر نصف بیده میشه یا یا شکر در لدیه کش جهل خودجیت نمیشه کرد. یک کش میشه کرد و جهل خودجیت نمیشه کرد. در مقابل این تصور یه تصور خیلی تصورات هست. یه تصورم که اون نه هسته نه یه تصورم که بعض از اهل سنده دارن که جهل حکم واقعی میشه وقتی تبقه همون. حالا کشتار میکنه با اون حک که دیگر راه دیگری نیست که نه حکم ظاهری میشه و این معامله به اسراف حکم ظاهری است حالا نصفتش با باقی ش میشه یا جدل بدل میشه یا جدل مماسل میشه حالا نه حکم ظاهری یعنی این به جای اون حکم واقعی است حکم واقعی محدوده این بی یا مماسل اونه چون در عرض دو ثانیه یا حکم واقعی یا حکم که معدده اعمال است یا آخری از کرد این هم هیچ پر می کنم مسئله و تنجیز مسئله تحضیل و تنجیز بیشتر در کفایی آنه جرد حجیت این جرد تحضیل و جرد منجزیت و معذریت حیرت حجیت جرد منجزیت و معذریت یعنی اگر مطابق واقع بود منجز واقع اگر مطابق نبود معذوری این تصیلش برشه اساسیه این بر اینه که اصلا خود حجیت قلب یه اصل هر که چون و تنجیز داره نه مخاطره کاشوییه پس حجت ناقص زن ناقص هم میشه مو کاملش کردن به این معنا و تنجیز خب دیگه این بحثاشون صادر شد این اینا قابل جعل هست اصلا درسته درست نیست کار بکنیم بحثاشون یه راهی هم بود که مرحوم شیخ انصاری تو این مسأله سلوکی خود ما همون اون رو گرفتیم با یه تغییری اصل این در باب اون چی که هست اون مسیحه یعنی به عبارت دیگر اصولاً حجیت داره مدار کشف نیست کشف زمینه حجیت حجیت حتی تو قرض هم به لحاظه یک امر موضوعی واضح شد اصلاً تحصیل امران مطلبی یه چیزی با توش باشه طریق صرف باشه و هیچ اثری نداشته باشه این روشن نیست وقتوزی ها داریشون رو کردیم حیات ما سه دسته بکیفیش به شرایطی که ما اون دنیایی را داشتیم پس یک بحث اساسی تصویر خود این یک بحث اساسی بحث نکته دوم در خصوص خبرهایی که این تصویر خود این دلیل دلیل ما بر خود جیت چیه اینه مطرح کنیم مردم ما دلیلشون که دلیلشون سیروالاست به این سیره شاره امضا کرد پس خجیه است و با امزای شاوه برای سیره اغلا راه دوستی که آیا خوبان می این راهه. خب اگر نقطه این باشه سیره اغلا باشه این سیره اغلا جاریز در اخبار من واسه برای واسه نمخواستیم از صورت طولانی بکنم سیره اغلا فهم میکن. شما از طرف بشن یک سری از اون آدم بود سیره اغلا هیچ اگر سی تا واسطر داشته باشه همه سقافت باشه سی اغلا هست که همین جوابیشون که رو مبنای ما ببینید بحث مبنا نیست بحث اضافه بر مبنا دلیل هم هست اگر کسی مبناش این شد که اینجا اصلا کاشفیت اضافه بر اون نقطه نقطه و است و اغلا کاشف نه. اصلا این اشکال هم هسته همه همه و اشاره کار اینه بایدونی که هم اشاره اول هم اشاره دوم روی مبنای ایشان نیست که ایشون جواب بده مثلا مبنای اولیشون انحلاله. انحلال بود. انحلال رو اون چون نکته ایشان نکته شرعیه نکته اوق و غلایه اون فرمون بین محروسه ها بلواز. و اما اگر دیگه تر رو ما آیه ندر گرفتیم خوب دقیقا چون وقتا موجوده من فقط یه اشاره بکنم بحث سریع اینه که اینجا شارع ما رو تحبوت کرده اگر شارع ما رو تحبوت کرده باشه اینجا این بحثش میاد یعنی اون تخریب واقعی و تبینید باز باید ببینیم ما آیه نبر رو چی جور معنا میکنیم حالا من دو تا معنا میکنم فردا توضیح بیشتر. مثلا من یک معنا اینجوری بکنیم که اگر آدل به شما چیزی گفت خود اخت بکنیم شما خبرش رو قبول بکن مثل اینجا اکم فاسقون به نویره به تباییون یک فاسق خبری که شما تباییون کردید ده نفر تباییون کرد منم تباییون کردم، شما تباییون شما بعد از تباییون به این نتیجه هستیم که خبرش درسته خبرم معاییده کلا من به این نتیجه نرزیدم خبر پاسق برای اونی که به نتیجه هستیده حجته برمن حجت هست یعنی به عبارت اخرا تعبود لازم نیست که اگر بر موردی آمد برای همه بیاد نه تعبود در باب خبرواهه داره به طریب بهتر نه این مثال از قبیل فتواست چطور اگر مفتی فتواهی داد برای مقلد ایشان حجته برای کسی حجته نیست ما اینجور بفهمیم آیه نبر اگر شما عادلی رو دیدیم این خبر برای شما حجته به تعبودن شرعی و کار به جهاز دیگه نداره به افراد دیگه هم ندار اگر این جور بفهمیم ما آیه نبرو در اینجا قاعدتر باید همین یعنی همون نقطه ای که سنیا در باقه حجیده خبر میگفتن این خبر عادل به معنا یا ایجاد مصرحت میکنه یا جعل و در میکنه یا باور فکر میده یا کاری میکنه خب اگر این معنا شد این برای کسی که برای او حرجیت داره. برای شخص مثل مثلا فقیه میشه، خبروانه مثلا فقهی میشه. برای کسی که مغلل و اوست قبوله اما اون شخص دیگه طلبونه. مثل حکم قاضی میشه. قاضی اون حکم کرده در این مسئله عوامان شماست. یه فقی گفته تعمرد که گفت نه این حکم درست نیست. اون حکم برای ترکین لازم, لازم, لازم اجراست. اما برای اون که شک داره نه واضح نیستار نه حکم که ایشون گفته درست قدر واضح رو همین چیزی شبیه این گرفتن اگر اینجور معنا بکنیم تا اثر شرعی نباشه واقعا حجیت نمیاد. اشکال به حال خودش باقیه چون مرموع خویی مرموعی مرموعی قبول ندارن اشتباه نشه آه. این مرموعی دوبانیش رو پردارین توضیح بیشتر میدن پردارین که الان توضیح برین که تا شرف فکر بکنیم شاره شارع درسته خبر آدل و حجت قرد و حجت تصویر شارع از وجیه همون معنای اغلایی وجیه ده که کاشفیه همه اصلا معنی صدقه لعادل همون کاشفیه تا تو یعنی همون معنی رو که ما در معنی اغلایی گفتیم شارع هم به همین معنا وجیه اغلایی اگر این طور شد اخبار محلوسته شما بمیشه فرمان میکنم پس باید نکته تنی در اینجا این نیست که آیه خویی ها مردم نایمی جواب دادن برای توضیح اشفال باید معنای اشفال روشن رو بشه و برای معنای اشفال اولا معنای حجیت روشن بشه ثانیان دلیل رو باید جلخبر رو باید رو اوشن بشه محمد رو خب تا که از هفتش ده تصدیر روحه باشه نمو خواهد کسیت صورت رو نروحه هست به یک صورت اخبار مروازه رو میگیده تا به اطلاع اخبار مروازه نمیده اینطور نیست که آن خوی جواب جواب ایشان در چه سال اول چه سال دوم روشن نیست یعنی به عبارت دیگر در حقیقت جواب ایشان این اصلا معنای حجیت رو با طرف مقابل قبول نداره و دلیل حجیت رو قبول نداره مثلا ایشون میگه مناتن شامل می چون در این ایشون عقل حدود مثل ایر شیره اون کلام ها رو میگیره اما نکته دقیقی لازمی نیست یعنی تو ذهنیت ایشان یک ذهنیت خاصی است که این جواب داده اون هم که اشکار کرده ذهنیت دیگری بوده که اشکال کرده اون ذهنیت مستشه یک چیز از ذهنیت و موجب چیز دیگه است این جواب اون اشکار نیست این مثالی اشاره شد جواب اول ایشان چه جواب از سال اول چه جواب سال دوم جواب نیستن با قول روزی اگه تو دو فارسی صورت مسئله را عوض کردن اونی که مستشکله یک مطلب گفته یک تصویر از حجید داره یک دلیل از حجید داره اینه که برون اون مثلا در آیه نبر و تصویر این کرده که حجید امر نسبیه امر مطلح نیست و چون امر نسبیه تا اونجایی که اثر شرعی داره قبول به الله مثلا شما ور هرریز و قال زبانی او که از ره قال حالا می. میگه خب بعدش گه اصلا به نواده بعد نمیرسه رسه همین اول اینجا اکم عاد رو بم و این فیبال فیبال خلبر آاضری نه اصلا اینجا به کلام هرریز نمیرسه نگاه نمیکنه بعد زارربوزه قان اصلا به اونجا نمی میگه آ تو داری کلام هرریز رو میکنه میکننی یک کسی به هرریز میگه آ داری کلام زار رو نح هرری زنده بود. میگه شما حکم الله میگه شما کن برای من شما داری کلام زراره نمی کن میگه خب زراره گفت که امام صادق خب گفت بله قبوله این باید بعد از این که عدل به حجیت کلام شما رو شامل باشید و خب هو اول کلام اگر اثرش شد من رو شده اون نکته اساسی کار بعد نزا آی خویی فهم در تصویر ما که حجیت تطمیم اون تاثیر نمیاد بگه حجیت تصویم کشبه حجیت امر تعبودی است به خبر حریص تقدر تعبود تصویم کشبه نمید. خب شما چه تعبودی به خبر حریصه خب زراره حریصه اونی که داریم بودی قال زراره میگه خب زراره با قال از ساده میگه این تعبود اول تمام ناشیم مخید تعبود دوم بگیم شما کلام امام رو نقد نکردی برای من شما کلام زراره رو به نقمه میکنم اون نبعال عاذلی و خدیوبر اینجا رو نمیگیره. نه دقت کنید مطمشی. پس نکته حقیقت اینه جواب استاد جاوید نائمی خیلی سعی راحت جواب بدن. انحراف جواب اول بود این دومی هم این نکته. این اصلا جواب مطابق با سوال نیست. و اگر سوال یعنی اشکال به همون صورت مطرح بشه که در کلمه تحرس سلمت آمده واقعاً از اشکالو به حاله اصلا قابل جواب نیست بله شما میگید اشتباه تو در چیز دیگر است یکی تصویر حجیت یکی دلیل حجیت خیلی در اون با سلام اما اگر تصویر حجیت اون باشه که اونا گفتن دلیل هم اون باشه که اونا گفتن که من فکر میکنم اینها بیشتر این در مقابل اشائر و هشیه بود. نهی که هر خبر رو قبول میکرد. محسن برای اونا یه رو اگر دلیل اون باشه، ادله اون باشه، بل اشکال وارده و جوابهای خویی درست نیست. جوابهای خویی اصلا مهنا رو عوض کرد. هم دلیل رو عوض کرد و هم تصویر رو حجید. و راست هم هست. انصابه این راسته. ما چین تصویر از حجید داشته باشیم. و چنین مبنای رو در حجج داشته باشیم و دلیل و با هم این باشه سیروغلا راست خوب مطلب خیلی واضحه سیروغلا هر دور شامل میشه ماع لواسته به با ده طبقه مست شامل میشه لكن این مبنای اشكال نیست مستشکل این تو ذهن نیست تو ذهن مستشکل چیز دیگری جواب ایشان به به جواب مستقل نمیخوره همین وقت خارج خیلی نایک کرد در ان شاء بحث رو دیگه بحث خبر باید تمامی پرده اگر پرده و حق و اصلاح کلی بحث و بحث همونی نه چرا حتی پرده اشتا رو رو عملیه